سفحه نود و شب هفته دینارزاد بسیار علاقه داشت که بقیه داستان پادشاه یونانی را بشنود اما او آن شب به زودی شبهای گذشته از خواب بیدار نشد و هنگامی بیدار شد که تقریبا صبح بود با وجود این شهزاد را بیدار کرد و از او خواهش کرد بقیه داستان پادشاه یونانی تبار را شهد دهد و گفت با عجله بگو چون دیگر صبح شده است شرصات هم بقیه داستان را چنین شهر داد پزشک دوبان یا بهتر گفته باشیم سر بریده او وقتی دیر که تا چند لحظه دیگر زندگی پادشاه پایان میابد فریاد کشید و با صدای رسایی گفت توجه کنید پادشاهانی که از مقام و زور خود استفاده ناروا می کنید و بیگناهان را گردن میزنند، خداوند دیر یا زود صدای اعمال آنها را میدهد. هنوز این کلمات به پایان نرسیده بود که پادشاه از این دنیا رفت و سر برید هم بی حرکت و خاموش شد. سپس شهرزاد گفت ای شهریار بزرگ داستان پادشاه یونانی تبار تمام شد و حالا برمیگردیم به داستان ماهیگیر و گورد. اما بهتر است که آن را در فرصت بهتر شهرده هم و حالا وقت کم است. شهریار که میخواست به کارهای روزانه بپردازد گفت بسیار خوب. خود را آماده کن و فردا شب برایمان شهر بده شب هجدهم دینازاد برای جبران دیر شدن شب پیش امروز خیلی زودتر از هر روز از خواب برخاست و شهرزاد را صدا زد گفت بقیه داستان ماهیگیر و قول را تعریف کن شهرزاد هم لب به سخن گشود و, و گفت ای شهریار بزرگ وقتی ماهیگیر داستان پادشاه یونانی را به پایان رسانید میخواست همان نتیجه و پایان را در مورد قول که هنوز در داخل صندقچه زندانی بود به کار ببرد به جانب صندقچه رو کرد و گفت اگر خداوند میخواست که تزشک دوبان زنده بماند به دعاهای التماس‌آمیز او ترتیب اثر میداد ولی خداوند درخواست او را رد کرد و اینک همین سنوج در انتظار تو است زیرا من درباره تو نیکی کردم و تو را از داخل صندوقچه بیرون آوردم و به تو آزادی بخشیدم ولی تو به جاییان که قدر خدمت مرا بدانی و خوبی کنی تصمیم به کشتن من گرفتی و به التماس من اعتناعی نکردی. حالا من هم باید مانند پادشاه یونانی تبار که پزش دوبان را کشت تو را به قطع برسانم گورت پس از سخنان ماهیگیر گفت ای دوست خوب من تو نباید چنین مخافات شدیدی را درباره من اجرا کنی. همانطور که گفته ام، جواب بدی را باید با خوبی داد. و چنین رفتاری مورد تحسین همه بزرگان و خیرت است منم. من اگر بد کردم تو بد نکن مگر حکایت امامی عطقه را نشنیده ای؟ ماهیگی گفت نه این حکایت را برایم شرح بده دور گفت اگر مرا آزاد کنید داستان های شنیدنی حیجان برای تعریف خواهم کرد ماهیگی گفت من تو را هرگز از این زندان آزاد نمی‌کنم و باید تو را به اعماق دریا بفرستم تا برای همیشه در آنجا بمانی. اون التماس کرد که مرا آزاد کن، من آسیبی به تو نخواهم رساند و از این گذشته راهی به تو نشان خواهم داد که ثروت بسیاری به دست آوری و از مال دنیا بی نیاز شوی. ماهی که تویید است به امید رهایی از ناراحتی و فشار تنگ دستی به قور گفت: من به حرف تو گوش می کنم، به این شرط که به نام خداوند بزرگ سوگند یاد کنی که پس از آنکه تو را آزاد کردم، آسیبه به من وارد نسازی و آنچه را که وعده به آن عمل کنی من خیال نمی کنم که در برابر خداوند بزرگ بتوانی به عهد و پیمان خود وفا نکنی قول به نام خداوند بزرگ سوگند یاد کرد و ماهیگیر هم بلا فاصله او را از داخل صندوق بیرون آورد دود قریزی از دهانه صندوق بیرون آمد و به زودی به شکل قول درآمد. اولین خالی که قول کرد پای خود لگد محکمی به صندوق چه زد و آن را به سوی دریا پرت کرد این عمل موجب ترس ماهیگیر شد و از گور پرسید چرا صندوق را به دریا انداختی؟ آیا نمیخواهی به سرگندی که یاد کردی وفادار باشی؟ گور خنده کرد و گفت نترس من برای تفریق این کار را کردم و به پیمان خود پای بندم و میخواستم تو را امتحان کنم تو دام ماهیگیریت را بردار و دنبال من بیا. قول این را گفت و به راه افتاد و ماهیگیر هم در حالی که تور ماهیگیری خود را برداشته بود پشت سر قول به راه افتاد اما اعتمادی در دل خود به قول حس نمی کرد آنها از شهر گذشتند تا به کوهی رسیدند و از کوه بالا رفتند تا به قله آن رسیدند و از آنجا سرازی شدند تا به جلگه پهناوری وارد شدند و پس از مدتی راه پیمایی در آن جلگه به آبگیر وسیعی رسیدند که در آن ماهی های دیده می ماهیها به چهار رنگ سفید و قرمز و آبی و طلایی بودند اون چنین ماهیهایی ندیده بود و آن ماهی های زیبا را تحسین می کرد ماهی با خود فکر کرد ماهی های بسیار بگیرد ولی قر گفت هر روز یک دانه از هر رنگ بگیر و نزد سلطان ببر و هدیه کن سلطان به تو پول کافی خواهد داد اما در یک روز فقط یک بار در این آبگیر شکار کن و اگر برخلاف آن کنی پشیمان خواهی شد. قول این را به و پای خود را محکم بر زمین کوفت و زمین باز شد و او را در خود فرو برد و دوباره زمین به حالت اول در درآمد. ماهیگیر دام خود را در آبگیر گسترانید و از هر رنگ یک ماهی گرفت و آن را بیرون آورد و به سوی شهر راهی شد. قبل از حرکت دلش میخواست یک بار دیگر دام خود را به آب اندازد و باز هم ماهی بگیرد اما یاد نصیحت غول افتاد و از این کار خودداری کرد در طول راه هزاران فکر از ذهن ماهیگیر گذشت و بالاخره فکر کرد بهتر است ماهی‌های حیرت انگیز را به حضور سلطان ببرد و به او هدیه کند و پاداش شایسته دریافت دارد سخن شخصاد که به اینجا رسید به خاطر فرار سیدن صبح لب از گفتار فرو بست دینارزاد گفت خواهر عزیز حکایاتی که تو شهر می میدهی هر کدام بهتر از دیگری است و به قدری هیجان و حیرت به همراه دارد که شنونده طاقت صبر کردن ندارد و میل دارد تا پایان داستان را بشنود شخصاد پاسخ داد چنانچه شهریار اجازه فرمایند من بقیه را فردا شهر خواهم داد شهریار هم که کنجکاوی برای شنیدن بقیه داستان داشت گفت من هم با دینارزاد موافقم بنابراین دستور ظالمانی سلطان یک روز دیگر هم عقب افتاد شب نوزدهم نزدیکی های صبح بود که دینارزاد ده وقت هر روز از خواب بیدار شد و خواهر را صدا زد که هنگاب گفتن بقیه داستان ماهیگیر و قول است شاهزاد هم با اجازه شهریار به سخن پرداخت و گفت وقتی پیرمرد ماهیگیر ماهی ها را نزد سلطان برد، سلطان یک قایه که آنها را با دقت و علاقه بسیار تماشا کرد و بر آنها آفرین گفت و با شگفتی اظهار داشت: من تا کنون ماهی به این رنگ و زیبایی ندیدم. آنگاه به وزیر خود دستور داد این ماهی ها را به آشپزخانه نزد آشپز تازه‌ای که شاه یونان برای او فرستاده است ببرد و بگوید این ماهی ها همان گونه که زیبا هستند، بایستی خوشمزه هم باشند. وزیر هم ماهی را به آشپزخانه آورد و به دست آشپز سپرد و گفت اینها ماهیهای ماهی های تازه هستند که برای سلطان هدیه آوردند و آنها را برای شام محیا کن. پس از این که وزیر به نزد سلطان بازگشت به امر سلطان چهارصد ست سکه به مرد ماهیگیر پرداخت. مرد ماهیگیر که در تمام عمر خود این همه پول در دست خود ندیده بود تصور می‌کرد در عالم رویا است. پس از آن که چندین بار های زر را لمس کرد و فهمید که حقیقت دارد بسیار خوشحال شد و به بازار رفت و بسیاری آزوگ و لباس و چیزهای لازمی دیگر خرید و برای زن و فرزندان خود به خانه برد. سخن شهرستان که به اینجا رسید گفت ای شهریار بزرگوار سرگذشت مرد ماهیگی را برایتان شرح دادم اما باید شما را با آنچه بر سر آشپز گذشت آشنا سازم که با چه حیرت و سرگشتگی روبرو رو شده بود آشپز پس از دریافت ماهیها آنها را داخل تابه میگذارد و اندکی روغن در آن می‌ریزد و تابه را بر سر آتش میگذارد پس از آن که ماهیها به مقدار کافی سرخ شوند آنها را برمیگرداند و از روی دیگر در تابه میگذارد هنوز این کار به پایان نرسیده بود که فریاد تعجب آشپز بلند می شود زیرا می‌بیند که دیوار آشپزخانه شکاف. و از داخل آن خانوم جوانی با زیبایی خیره کننده و قامت موزون وارد آشپزخانه شد لباسی از حریر گلدار بر تن داشت و به شیوه مصریان قدیم گوشواره های برگوش و سینریز مروارید که با یاقود زینت یافته بود به گردن و دستبند های و یاقود در دست و شاخه از درخت مرد سب در دست داشت آشپس که خانوم جوان بود از دیدن این صحنه غیرعادی آنچنان ترسید که نزدیک بود از ترس و حیرت جان به جان آفرین تسلیم کند. بانوی زیبا، خرامان خرابان به که ماهی در آن بود نزدیک شد و در حالی که با شاخی درخت به یکی از ماهی ها زد و پرسید به وظیفه خود عمل می کنید و ماهی در تابه پاسخ داد بلی این کار را با یک قک ماهی ها انجام داد، و بار دیگر با همان شاخه درخت به ماهی ها زد و همان پرسش را تکرار نمود. این بار هر چهار ماهی سر خود را از تابه بلند کردند و همه با هم گفتند آری. آری ما به وظیفه خود عمل می کنیم ولی نظر شما شرط است. اگر شما تایید کنید ما همچنان وظایف فخیش را با وفاداری انجام خواهیم داد. ما سعی می کنیم شما را خوشنود از خود نگه داریم. و خوشنودی شما از ما موجب خشنودی ما هم خواهد بود. همین که این گفتگو به پایان آمد خانم زیبا ماهیتابه را وارونه کرد و دوباره در همان شکاف داخل دیوار یعنی از همان جایی که آمده بود خارج شد و دیوار هم در همان لحظه به هم آمد و به صورت قبلی برگشت. آشپس بیچاره که از ترس و حیرت در جای خود بی حرکت می شده بود به گریه افتاد و در حالی که می گریست، با خود حرف میزد و میگفت. چه خاکی بر سر کنم چه عذری بیاورم که سلطان باور کند حتماً او حرف مرا باور نمی کند و شدیداً بر من خشمین خواهد شد در این موقع نگاهی به ماهیها که روی زمین افتاده و رنگ آنها از زغال هم سیاه شده بود کرد و به خود لذید و گریه را ادامه داد و گفت سلطان فکر خواهد کرد من ماهی ها را به این صورت درآوردم در این هنگام وزیر به آشپزخانه آمد و سوراخ ماهیها را گرفت باشفت هم آنچه در آنجا اتفاق افتاده بود برای او باز گفت و وزیر هم در حیرت و شگفتی فراوانی فرو رفت ولی چیزی نگفت و به نزد سلطان رفت و با بهانه‌ای که برای سلطان آورد او را قانه کرد ولی ابدا اشاری به آنچه گذشته بود نکرد آنگاه دنبال مرد ماهیگیر فرستاد و وقتی ماهیگیر نزد او آمد از او خواست که چهار عدد ماهی دیگر برای او بیاورد ماهیگیر هم که نمیخواست از نصیحت قول سرفیچی کند و برای بار دوم در یک روز از آن ماهی ها شکار کند بهانه آورد گفت چون ماهی در مخان دوردستی هستند فردا می ماهیها را رو بیاورد. روز بعد ماهیگیر به آبگیر رفت، تور در آب انداخت و چهار عدد ماهی به رنگ چهارگانه سید کرد و آنها را به شهر نزد وزیر برد وزیر هم آنها را گرفت و به آشپزخانه رفت و خودش هم در کنار آشپز ایستاد و به او گفت که آنها را برای غذا مهیا کند. آشپز هم ها را در تاب انداخ، بعد از مدتی آنها را برگرداند و از روی دیگر کرد. در همین هنگام خانم زیباروی دیروزی از شکاف دیوار به آشپزخانه آمد و همان لباس حریر گلدار را پوشیده و جواهراتش را به خود آویخته بود. و همان شاخه درخت را هم در دست داشت و در حالی که به سوی ماهیها میرفت، با که همان شاخه به یکی از ماهی ها زد و همان سخن دیروز را تکرار کرد. هر چهار ماهی هم همان پاسخ دیروز را به او دادند. در همین زمان صبح فرا رسیده بود و شهرزاد دیگر به سخن ادامه نداد و مانند روزهای گذشته همان گفتگوها بین دینارزاد، شهرزاد و شهریار تکرار شد. و شهریار هم حاضر شد کشتن او را به روز بعد ما کند شب بیستم در شب بیستم شهریار به سخن در آمد و خطاب به شهرزاد گفت بانوی عزیز سعی کنیم امشب داستان مرد ماهیگی را به پایان آوری شهرزاد گفت بر روی چشم امرتان را اطاعت میکنم و آنگاه چنین ادامه داد وقتی ماهی ها پاسخ دادند آن بانوی زیبا روی بانوک شاخه درخت را وارونه کرد و دوباره دیوار باز شد و او هم در دیوار رفت و در همان لحظه هم دیوار به هم آمد. وزیر که این صحنه باورنکردنی و عجیب را دید، با خود گفت که حتما باید این ماجرا را به اطلاع سلطان برسانم. سلطان پس از شنیدن داستان، فوراً ماهیگیر را احضار کرد و چهار عدد ماهی رنگی از او خواست. ماهیگیر هم فرصت خواست تا ماهی‌ها را بیاورد. و در این فاصله به آبگیر رفت و تور انداخت و چهار ماهی گره و فوراً آنها را به سلطان تقدیم کرد. سلطان هم چهارصد سکیه زر به او داد. ماهی‌ها را به آشپزخانه بردند و سلطان هم خودش به آشپزخانه آمد. در این موقع آشپز مانند دفعات گذشته ماهی‌ها را روی آتش در تابه گذاشت و پس از مدتی ماهی‌ها را وارونه کرد تا روی دیگر آن پخت شود. در همین لحظه دیوار باز شد و سیاه قویه کل و بلندبالایی از آن بیرون آمد و چوب سبز جنگی هم در دست داشت یک راز به سراغ ماهی داخل تا برفت و به آنها گفت ماهی ها شما به وظیفه خودتان عمل می کنید. آنها هم جواب دادند آری آری ما به وظیفه خود عمل می کنیم ولی نظر شما شرط است اگر شما تایید کنید ما همچنان وظایف فخریش را با وفاداری انجام خواهیم داد و سعی می شما را خشنود از خود نگه داریم خوشنودی شما از ما موجب خوشنودی ما هم خواهد بود سخنان ماهی ها پایان نیافته بود که قلام سیاه با که پا زربهی به تابه زد و ماهی ها را روی زمین آشپسخانه نقش زمین کرد و آنها به صورت تکی و غال در آمده بودند قلام سیاه پس از این عمل با ترضی وحشیانه به سوی دیوار رفت و دیوار باز شد و داخل گردید و دوباره دیوار به هم آمد و به حالت اول خود بازگشت. سلطان به وزیر گفت آن چرا که دیدم فکر من به خود مشغول داشته و این ماهی ها نشانی هستند که رازی در پس آن نهفته است و من باید از سر از این راز درآورم؟ سپس دستور داد مرد ماهیگی را نزد و آوردند و به او گفت این ماهی های تو ما را با مشکلی رو به است و میل دارم محل آنها را بدانم. ماهیگیر گفت. این در ماهی ها در آبگیری که در بین چهار تپه قرار گرفته است زندگی می کند. آنگاه سلطان از وزیر پرسید تو این آبگیر و محل را می شناسی؟ وزیر گفت نخیر آنگاه سلطان از ماهیگیر پرسید تا انجایی که ماهیها هستند چقدر فاصله است؟ ماهیگیر جواب داد سه ساعت راه است. سلطان دستور داد که درباریان و وزیر آمادهی حرکت شوند و ماهیگیر هم به عنوان راهنما در جلوی آنها به راه افتاد و به سوی محل ماهی ها حرکت کردند. سرانجان سلطان و همراهان به همان محلی که چهار تپه قرار گرفته بود و آبگیری در میان آنها بود رسیدند. هیچکم تا کنون چنین محلی را ندیده بودند و سلطان گفت: در کنار آبکی چادرها را برپا کنید. سراپده سلطان و دیگر همراهان را برفراشتند. هنگام شب همگی در خیمه سلطان جمع شدند. سلطان گفت من تا نفهمم چگونه این آبگیر و ماهی‌های رنگی آن پدید آمده اند از اینجا نمیروم. در حالی که همه شماها مدعی هستید قبلا چنین آبگیر و ماهی‌هایی در اینجا نبوده است این رازی است که من باید آن را پیدا کنم سلطان رو به فرماندهان کرد و گفت من این شب به تنهایی از اینجا میروم و به شماها دستور می دهم که غیبت من کاملا باید محرمانه باشد و کسی از آن نباید آگاه شود و احیانا اگر بعضی از اعضایی دربار من خواستند مرا ببینند بگویید که سلطان مشغول کار است و وقت ملاقات ندارد اگر چنانچه روز بعد هم خواستند مرا ببینند همین را با آنها بگویید تا وقتی که من مراجعت کنم وزیر هر قدر کرد که مانع رفتن سلطان شود موفق نشد و هرقدر به سلطان گوشزد کرد که تنها رفتن شما خطرناک است و ممکن است به قیمت جان شما تمام شود، فایده نکرد سلطان پوشک مناسبی برای سفر دربر کرد و شمشیر خود را هم برداشت و همین که سراسر اردوگاه در و آرامش در دل شب فرو رفت به راه افتاد سلطان اولین تپه بلند را پیمود و از سوی دیگر آن پایین رفت و دشت پهناوری رسید و همانجا تمام روز را به راه خود ادامه داد تا آنکه خورشید خوشید نمایان گردید و از دور عمارت بسیار بزرگی را دید و با دیدن آن بسیار خورسند گردید و امیدی در دل حس کرد که شاید از درون این عمارت بسیار بزرگ بتواند رازهایی را فاش کند وقتی سلطان به نزدیکی عمارت رسید دریافت که قصر با شکوه و مجللی است که دارای استحکامه بسیار است و دیوارهای قصر سراسر از سنگ مرمر سیاه و شفاف ساخته شده است و به بدقاحت صاف و هموار است که مانند آینه چهرهی ای انسان در آن نمودار می‌شود. سلطان خوشحال بود که تا اینجا بیهوده رنج سفر را بر خود هموار نکرده است و در جلوی قصر ایستاد و با دقت تمام آن را تماشا کرد. پس از چند لحظه سلطان به در ورودی قصد رسید که به شکل دو برگ درخت بود. یکی از آنها باز بود و سلطان توانست به راحتی وارد قصد شود. اما ابتدا چند ضربه به در زد. صدایی از درون قصد نیامد چندین بار پیاپی ضرباتی بر در ورودی وارد آورد ولی هیچ آوایی از داخل قصد به گوش نرسید. سان به خود گفت: به نظر میرسد در قصد کسی زندگی نمی کند. وانگهی اگر هم موجودی در آنجا باشد جای نگرانی و ترس نیست زیرا با خود وسیله دفاع دارم. سرانجام او وارد قصد شد و همینطور که جلو می رفت. صدا میزد که کسی در قرش هست که به این مسافر خسته نوشیدنی یا آبی بدهد باز هم صدایی به گوش نرسید ساسان جمله‌ی خود را دو سه بار با صدای بلندتر تکرار کرد اما پاسخی نیامد این سکوت و خاموشی سبب شگفتی فراوان او شد و حیرت کرد که چگونه ممکن است چنین قسط با خالی و بدون سکنه باشد در اینجا شهرسا سخن خود را به پایان رسانید و باز همان گفته قبلی، هنگام قبل از طلوع خورشید بین دینارزاد و شهزاد صورت گرفت و از لحاظ جلوگیری از تکرار آن به دنبالهی یک مطلب می پردازیم و سراغ شب بیست م یکم می رویم شبه بیست و یکم گفت وقتی سلطان فهمید که کسی در قصد زندگی نمی کند وارد تالارهای پهناور که آراسته به قادیهای ابریشمی، و پشتی های زربفت و اساسیه گران قیمت و کمیاب بود گردید و زینتالات و اشیاء گرانبهای های قدیمی و بیمانند از کشور هندوستان که مزین به زیورالات قیمتی مانند طلا و نقره ناب بود در همه تالارها دیده میشد بعد از آن سلطان به تالار بسیار بزرگی رسید که در میان آن حوزچه زیبایی قرار داشت که از درون فواره های زردین که به شکل سر شیر بود آب شفاف و تمیزی به داخل حوزچه میریخ. چهار مجسمین زرین شیر در چهار گوشه این حوزچه قرار داشت و هنگامی که قطرات آب از دهان شیرها به بیرون فوران میکرد به صورت دانه های در رو گوهر و الماس فرو میریخ. باقهای بهشتی و زیبا که حوش از سر انسان به در میبرد از سه سوی این قصر باشکوه و و مجلل بر گرفته شده بود. و پر پرگل با گلهای رنگارنگ خشبو و آبنماهای لبریز از آب شفاف و هزاران درخت سبز و و بسیار چیزهای دیگر که بر زیبایی و شکوه این باغ و قصر زیبا میافزود دیده میشد ولی آنچه بیش از هر چیز دیگر زیبایی و یکتا بودن این قصر را به حد كمان می‌رسانید. پرندگان بیشماری بودند که با نقمه و آواز خوش و دلانگیز خود قوقا و شوری در تمام فضا برپا کرده بودند و هر بیننده و شنونده را در حالت خوش و مستانه فرو می بردند. پرندگان خوشنوا در روی شاخسارهای درختان لانه داشتند و شب و روز در آن باغ به سر می بردند. سلطان از تالاری به تالار دیگر قدم می گذاشت و همه جا را با دقت از نظر تیزبین خود می همه تالارها را با شکوه و انباشته از طلا و زیورالات و اساسی قیمتی دید که در نهایت سریقه آرایش یافته بودند از آنجا که سلطان خسته شده بود به اتاق خلوتی که رسید در همانجا نشست و استراحت کرد در این اتاق رو به باغ گشوده میشد و از آنجا تمام باغ را میشد دید سلطان در آنجا نشست و آنچه را دیده بود در ذهن خود مرور داد اندیشههای گوناگون در مغز او میگذشت در همین احوال ناگهان صدای ناله و شخایت به گوش او رسید آوای کسی که از بخت بر خود شکفه می کرد سلطان حواس خود را جمع کرد و با دقت گوش گوش فراداد و این سخنان به گوش او رسید ای فلک کجفدار و ای روزگار ناسازگار که نتوانستی خوشبختی و شادکامی مرا ببینی و مرا به صورت نگونبخترین افراد دنیا درآوردی و این همه شکنجه و رنج و درد بر من وارد ای؟ چرا یک باره جانم را نمیگیری تا از این همه ذلت و خاری و زجر و شکنجه رهایی یابم افسوس که پس از آن همه درد و رنج هنوز هم زندم و هر روز باید همان شکنجه را بر خود هموار کنم شفا به سوی حرکت کرد که صدا از آنجا می آمد پس از گذاشتن از یک تالار در حالی که سخت تحت تاثیر زاری ها و ناله ها قرار گرفته بود به در ورودی تالار دیگر رسید و آن را گشود تالار فسی دید که در میانه آن تالار مرد جوان خوشسیمایی را بر روی تختی بستهاند این جوان لباسهای گرانبها بر تن داشت و از سیمای او آثار نجابت و بزرگزادگی نمایان بود و به خوبی رنج و اندوه عمیق درونش بر روی چهرهاش دیده میشد ساتار که نزدیک جوان در رسید به او ادای احترام کرد و جوان هم که در آن حالت قاده نبود حرکتی از خود نشان دهد با اشاره سر پاسخ احترام او را داد و سپس به سخن گفتن پرداخت و گفت ای بزرگوار باید برای ادای احترام از جای خود برخیزم و اون چرا که شایسته شما است به جای آورم ولی در این وضع بسیار نامطلوب و دشواری که من گرفتارشم توان آن را ندارم بنابراین ناتوانی مرا بر من به حساب نیاورید سرتان که این را شنید گفت ای انسان والا از محبت و مهر شما نسبت به خودم بسیار سپاسگزارم اما درباره ناتوانی شما به این که توانید به طور دلخواه به من احترام کنید نگران نباشید ناتوانی شما به هر دلیل که باشد من با تمام وجودم آن را پذیرم من با شنیدن صدای ناله شما به اینجا آمدم تا شما را یاری کنم و از این ناراحتی رهایی دهم و به یاری خداوند توانا دهم ده که اندوخ و غم شما به پایان رسد. من آن چه در توان دارم برای رهایی و آزادی شما به کار خواهم گرفت. ولی قبل از هر چیز از شما خواهش دارم به من بگویی، این آبگیر و ماهی هایی که در آن دیده می شود چگونه در این مکان پدید آمده و سرگذشت آن چه بوده است؟ این قصر بزرگی با شکوف مال چه کسی است و خودت در اینجا چرا هستی؟ و برای چه در این یکی و تنها دو چار و اندوهی جوان به جای پاسخوی به سلطان زار زار گریستن آغاز کرد و از وقت بد خود به شکایت پرداخت و گفت همسر من این بلاها را بر سر من آورد او همه مردان و سپاهان مرا نابود و به صورت موجودات دیگری در آورد خوشبختی و شادی و آسایش همه افرادی را که خود از آنها سربرستی می کرد نابود ساخت و کشور زیبا و ملت عزیز مرا در سکوت و خاموشی فرو برد. سلطان که شدیدن حس ترحم و محبتش برانگیخته شده بود، جوان را دلداری داد و مراتباً از او دلجویی می‌کرد و او را به امیدواری تشویق می‌کرد. از او می‌خواست که این همه بیتابی و بیقراری نکند. جوان با چهره پر اندوه لباس خود را به کناری زد و بدن خود را نمایان ساخت. سلطان مشاهده کرد که بدن این جوان از ناحیه کمر به پایین به حالت سنگ مرمر سیاه است و از ناحیه تا کمر به حالت طبیعی است. سلطان از شدت ناراحتی بر خود پیچید و احساس ناراحتی فراوان کرد. شهرزاد که گفتارش به اینجا رسید، به شهریار گفت که چون صبح فرا رسیده، اجازه دهند بقیه داستان را بعدا بگوید. شهریار هم که از این داستان بسیار راضی بود و در دل خود یک ماه دیگر برای کشتن شهرزاد فرصت پیش بینی کرده بود، موافقت کرد ولی قصد خود را درباره یک ماه مهلت آشکار نساخت. شبه بیست و دومین شب شهستات بقیه داستان را چنین ادامه داد. سلطان که از وضع رقتبار جوان بسیار درش سوخته بود رو به جوان کرد و پرسید چه بر سر تو آمده که به این شکل در آمدی؟ من تردید ندارم که پدیدار شدن آبگیر و ماهی های رنگی شناور در آن با سرنمیشته تو بی نباید باشد. من اطمینان دارم بازگو کردن سرگذشت و اندوه درون انسان را ثبت می کند و از غم شخص می کاهد. جوان گفت من خواهیش شما را رد نمی کنم. گرچه بازگو کردن سرگذشت و اندوه درون انسان را ثبت می کند و از غم شخص می کاهد، اما بازگو کردن سرنوشتم برای من ملالنگیز خواهد بود. ولی پیش از گفتن شرح حال خود باید چشم گوش و حواس خود را کاملا جمع کنی. زیرا این ماجرا کاملا بیمانند است. و تا کنون در زندگی برای کسی اتفاق نیفتاده است. سرگذشت شاهی جوان و جزیره های سیاه. داستان از این قرار است که پدری داشتم محمود نام که پادشاه این کشور بود. این کشور از مجموعه چهار کوه مجاور یکدیگر تشکیل یافته بود که تا قبل از اتفاقاتی که اخیراً رخ داد به شکل چهار جزیره بود و پدر من پادشاه آن چهار جزیره بود. مركز حکومت پادشاه که مقر سلطنت و دربار او بود، درست در همین محلی که اکنون آبگیر قرار دارد واقع شده بود. بقیه داستان را که شرکا هم داد، شما را با کلیه اتفاقات آشنا خواهد ساخت. پدر من شاه کشور در سن هفتاد سالگی بدرود زندگی گفت و من به جای او به تخت شاهی نشستم و با دخترعموی خود ازدواج کردم.